بسم الله الرحمن الرحیم بین ناسخ و منسوخ رسیدیم و اما النسخ فمعناه لغتا الالزاله میفرمایند اما نسخ معنا لغبیش ازاله می از بین بردن یقالو در عربی گفته نسخت الشمس ظلها از بین برد خورشید سایره را اذا ازالته. چه زمان میگن نسخت الشمس و الظله اذا ازالت هو که سایر رو از پس هم معناي با ازاله است و معناه النقل و گفته شده معناي نسخ ان نقل است نقل كردن من قولهم مثال اين قولشون نسخت ما في هذا الكتاب نسخ كردم آنچه را در این کتاب هست ای نقلته یعنی نقلش کردن الان در گوشه خودمون تنظیمات شنوغی که شما عربی باشه میخوای کپی بگیرم این نسخ این به این معنی دومش هست حد دوه الان تعریفش میکنه هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدمی على وجه لولاهو لکان لكان ثابتا مع تراخيه عنه این تعریف خود ناسخ هست چون منسوخمون رفع حکم من میگن یا رفع لفظ میگن حالا آیه یا حدیثی اومده لفظش برداشته شده کلا یا فقط حکمش برداشته شده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت خطابي هست ناسخ دلالتي بر رفع حكمي كنه يا رفع لفس الحكم الثابتي حكمي كثابت هست اين اثابت صفتي حكم هست بالخطاب المتقدم بخطابي قبلي حكمي كقبلا بآيي يابا هديسي وماذا الان خطابی دیگه اومده و اونو برداشته رفعش کرده الا بالخطاب المتقدمی على وجه بگونه ای که لولا اگر این خطاب نبود یعنی دومی لکان ثابتا اون حکم دومی ثابت میمان پس خطابی که دلالت بر رفع حکمی که ثابت شده است با خطاب متقدم بگونه ای که اگر این خطاب دومی نمی بود اون خطاب اولی حکم اولی ثابت بود مع تراخیه عنه البته این خطاب دوم با اولی فاصله داشته باشه یعنی مدتی گذشته باشه بین ناسخ و منسوخ چون اگر متصل به با اولی باشه به با اولی اون موقع دیگه بحث ناسخ و منسوخ نیست بیان هست شرط هست صفت هست بیان حکم قبلی هست چون متصل بش اومده حالا چی از نوع شرط باشه چی از نوع صفت چی از نوع شرطش فرقی نمی مانند ولی الله على الناس حج البيت من استطاع الهی سبیله برای الله هست بر مردم حج خانه خدا خب این عموم هست من استطاع الهی سبیله ولی هرکس بتونه خاص خب این منستتا عائله سبیله دیگه حکم قبلی رو منسوخ نکرد بلکه خاصش کرد چون متصل به اون هست پس اینطور تعریفش کرد کتب جدید ساده تر تعریفش میکنند تعریف میکنند ناسخ رو مثلا شیخ خسیمین یا دکتر زیدان یا زهیلی یا دیگران بالا بردن حکم دلیلی شرعی یا برداشتن لفظ شرعی با دلیلی از کتاب یا سنت برداشتن حکم یا لفظی شرعی با دلیلی از کتاب یا سنت قبلا اومده حکمی که شما این کار رو بکنید بعد از مدتی میاد که این حکم انجام ندید منسوخ میشه این خیلی بحث ساده ای است و یا جوز نسخ رسمی و بقاع الحکمی حالا انواع نسخ توضیح میده که چه انواعی داره البته به اعتبار منسوخ یعنی این منسوخ میگه گاهی موقع اون الفاظش میمونند حکمش باقی میمونه گاهی حکم باقی میمونه و الفاظ منسوخ میشند حذف میشند اینکه شما میبینید در قرآن وجود نداره ها وجود داشته الان انواعش رو توزیم ده و یجوز نسخ رسم و جائز منسوخ بودن الفاظ الحكم و بقاء الحکم و بقاء حکم حکم باقی بمونه مثالی که کتب اصول میزنند مسئله رجم مطرح میکنند که میگن قبلا در قرآن آیه رجم وجود داشته برای ولی بعدن الفاظ منسوخ شدند و حکم باقی مونده این است که میزنند ولی بعدن هر روی مناقشه هم هست کاری نداریم این مثالی ونسخ و نسخ الحكم وبقاء الرسم منسوخ شدن حکم من و باقی ماندن لفظش منسوخ شدن حکم و باقی ماندن رسم شو در سوره انفال میبینیم که حکمی وجود دارد که اگر مسلمانان بیست نفر می بودند باید در مقابل دویست نفر برشون واجب بود که پایداری کنند صبر کنند و جهاد کنند یعنی هر نفری در مقابله پنج مقابل نفر ولی بعدن این منسوخ شد اومد الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفه فا این منكم مئة صابرة يغلبون مئته وإن حكم انسوخ شد أمد هر نفري در مقابل دو نفر هر نفري در مقابل دو نفر والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل فس دونو نسخوا إنجا توزيدات نسخه، لفظ و بقای حکمش یعنی در شریعت هنوز حکم باقی مانده ولی الفاظ منسوخ شدند منسوخ شدن حکم و باقی ماندن الفاظ مانند آیه 65 انفال هنوز تلاوت میشه ولی حکم دیگه الان این نیست و یک نسخ دیگی اومده که در متن نیومده این هست که هم حکم و هم لفظ منسوخ میشن که مثالش رو ده بار شیر دادن مثال میزنن یعنی یه زنی تفلی رو ده بار شیر بده تا, تا شیر خارقی ثابت بشه تا محرمیت شیر خارقی براش ثابت بشه میگن هم لفظش تو الان تو قرآن وجود داره نداره و هم همچنین حکم دیگه الان باقی نمونده این شد انواع نسخ به اعتبار منسوخ و به اعتبار دیگر و النسخ الی بدل و الی غیر بدل و النسخ به بدل و به غیر بدل حالا نسخ به بدل چی یعنی یه آیه حکمی منسوخ میشه سر سرجع جای سر جاش دیگه میاد اینو میگن منظورش و, و نسخ و الى بدله منسوخ شدن به بدل یعنی که دیگه سر جاش میاد و الى غیر بدل یعنی حکمی منسوخ بشه ولی سر جاش حکم دیگه نیاد که گروهی از فقها این نوع نسخ رو جائز نمیدونند چون قرآن گفته که ما ننسخ من آیت او نونسها بخیر منها او مثله هران چرا که ما, ما منسوخ میکنیم یا فراموشش میگردانیم سر جاش بهترازون یا مانند خودشو میآوریم لذا با, دل... با استناد به این آیه گفته ان که نسخی که سر جاش حکم ای نیاید وجود ندارد ولی این جمهور اقلیت فقه و اصلا این نقطه رو اشاره بکنم که گروهی هم گفته اند اصلا ناسخ و منسوخ وجود ندارد که اینو خودتون دنبال تحقیقش بروید که گروه از معتزلیه همین نظریه رو دارد خلاصه والنسخ النسخ بدل و الی غیر بدل توضیح دادیم و الی ما هو اغلظ و الی ما هو اخف و نسخه به آنچه که سنگینتر حکم هست حکمش اغلب یعنی حکمش سنگینتره مثلا حکمی وجود داشته اون منسوخ شده سر جاش یک حکم سنگینتری اومده در مورد روزه این مثالو رو اصولیون که ابتدا کسی که روزش رو میخورد اختیار داشت بین که دوباره روزه بگیره یا فدیه بده، تعام بده که بعدا اومد و حکم سنگینتر شد و روزه و در حق کسی که سالم هست فرض شد دیگه نمیتونه فیدیه بده فیدیه فقط برای افراد برای همیشه ناتوان هستن و افراد دیگر پس و الی هو اغلاف و منسوخ شدن به حکمی که ناسح غلیزتر باشه سنگین تر باشه و الى ما هو و همچنین به بانچه که ناسخ خفیفتر باشه سبکتر باشه مثل اون آیه که خوندیم و این یکم منکم عشرون صابرون یغلبون مئتی که بعدش اون حکم منسوخ شد در مقابل این حکم که سبکتره فا این یکم منکم مئتون صابرتون یغلبون مئتی یه نفر در مقابل دو نفر مقابلن یه نفر در مقابل پنج نفر 25 تا میشه 200 تا 20 تا در مقابل 200 تا باید تحمل می‌کردن و البته نوع سومی وجود دارد که بعضی هم در متن از ذکر نشوده منسوخ شدن به بدلی که نه سنگین‌تر نسبوکت‌تر و بلکه مثل حکم قبلی هست در سبوکی و سنگینی که تغییر قبله رو مثال می زنن که حکم قبلی منسوخ شد و قبله تغییر کرد به سمت بیت الله الخرم این شد به اعتبار منسوخ اقسام نسخ و یا نسخ الكتاب بالكتاب حالا به با اعتبار ناسخ توضیح میده. تقسیم بندی میکنه و جایز است نسخ کتاب با کتاب یعنی قرآن با قرآن جائزه که قرآن با قرآن منسوخ بشه آیه با آیه منسوخ بشه که در این نوع اختلافی بین اصولیون وجود ندارد و نسخ سنتی بالکتابی و همچنین و جائز است منسوخ شدن حدیث با كتاب يعني منسوخ سنت باشه ناسخ قرآن ونسخ السنت بالكتاب ومنسوخ شدني سنت با كتاب با قرآن وبالسنت وبالسنت <تصفيق> الحمد لله فس جائزة قرآن ناسخ قرآن قرار بگیره و جائزه است که قرآن و سنت ناسخه سنت قرار بگیرند که البته در اینی که کتاب بیاد ناسخ سنت قرار بگیره اختلاف وجود داره یعنی اختلاف فکرهای وجود داره که جمهور میگن جائزه و يجوز نسخ المتواتری بل متواتر یعنی جائز است که متواتر با متواتر منسوخ بشه اونی که منسوخ شده متواتر باشه و ناسخ هم متواتر باشه ما دو متواتر داریم قران که کلش متواترا ثابت شده متواتر متو... ثبوت هست در احادیث بعضی از احادیثا رو داریم که متواترند میگه جائزه که متواتر با متواتر منسوخ بشه در مورد قرآن که با قرآن قبلا اشاره کرده بود ابتدای ابتدا که گفته بود جائزه نسخ کتاب با کتاب اما اینی که ك... واقعا کتاب قرآن با سنت متواتر جائزه یا نب هایی وجود دارد ما جهت تحقیق شما دیگه قول راجهی عرض نمیکنیم فقط میگیم که همچنین اختلافی وجود دارد خوب پس جائز است میگه نسخ این نظریه معلف است وجائز نسخ شدن متواتر با با متواتر و نسخ الاحادی بالاحادی وبالمتواتر و منسوخ شدن احاد یعنی حدیث های احاد واحد به وسیله احاد و بالمتواتر و متواتر خبري واحد به وسیله خبری من منسوخ ولا یجوز نسخ الكتاب بالسنه بله نیست منسوخ شدن کتاب قرآن با حدیث یعنی ناسخ حدیث باشه و منسوخ قرآن همچنین چیزی میگه جایز نیست که البته این یک مسئله اختلافی هست که خود معلف در کتاب برهانش میگه که جایز هست نسخ کتاب قرآن به وسیله سنت خلاصه میگه در این متن میگه ولا یجوز نسخ کتاب به سنت جائز نیست حالا کدوم یکی از دو قول شواغن راجح هستند؟ این تغییر به اهده شما ولا یجوز نسخ کتاب به سنت جائز نیست منسوخ شدن کتاب قرآن بوسیلی سنت ولل متواتر بل و ون متواتر بوسیلی آحاد یعنی قرآن و سنتی که بوسیلی تواتر ثابت شده اند اون سنتی که متواتران ثابت شده است جائز نیست بوسیلی آحادی که الهاز قوت از خودشون پایین است منسوخ منسوخ بشند که این البته مذهب جمهور هم هست و گروهی ظاهریه و ابن حضم گفتند که جایز است و خیلی از معاصرین هم همین رو ترجیح میدند ولل متواتری بالآحد و جائز نیست منصف شدن متواتر به وسیله آهاد. متواتر قبلا هم گفتیم اون نسی هست که با جمع کسیری روایت شده باشه که احتمال توافق بر دروغ در آنها نباشه یعنی تعدادی در تمام طبقات اون روایت و روایت کرده باشند که احتمال دروغ، احتمال توافق بر دروغ در میانشون نباشه که بعضی تعداد هم برش تعیین کردند که مثلا ده نفر باشند، فلان نفر باشند خلاصه ای باشد که همچنین احتمالی وجود نداشته باشد لانش الشیء یونس خوب مثله میگه چرا جایز نیست منسوخ شدن قرآن با سنت و چرا جایز نیست منسوخ شدن متواتر با میگه برای این که چیز منسوخ میشه با مثل خودش و بما هو اقوامن و با چیزی دیگر منسوخ میشه که قوی از خودش باشه سنت ضعیفتر از قرآن الله حضرت ثبوت و آحاد زعیفتر از متواتره لذا میگه به این دلیل جائز نیست که قرآن به وسیله سنت منسوخ میشه و متواتر به وسیله آحاد خیلی مختصرا بحث ناسخ و منسوخ رو توضیح دادیم موافقه پیروز باشید